صفحه 819. سرانجام و نوزده سرانجان شد و جسد دوز دریایی را برای شام خود بکل ببرد. سپس سیاه به من گفت گریه نکن و خود را آماده کن تا با من ازدواج کنی. دیشب میخواست مرا مجبور سازد با او هم شوم شدم که شما او را کشتید. همین که شاهزاده به سخنان خود پایان داد خدا داد سخت ناراحت شد و درش به حال او و سرنوشت ناسازگار او سوخت و گفت ای بانوی محترم از این پس تصمیم گرفتن با خودتان خواهد بود ولی فرزندان شاه حدران و همچنین خود من بسیار خشنود خواهیم شد چنانچه رضایت دهید همراه ما به قصر پادشاه بیایید و در آنجا زندگی آسوده و امنی را دنبال کنید پادشاه و ملکه شما را دوست خواهند داشت و سعی می‌کنند آسایش و خوشحالی شما را فراهم آورند و من در حضور همه شاهزادگان حاضر در اینجا به شما پیشنهاد ازدواج می کنم. شاهزاده خانم پاسخ مثبت داد و مراسم عروسی ساده‌ای همان روز برگزار شد و خوشبختانه خوراکی و نوشابه فراوان که سیاخپوست قولاسا گرد آورده بود مورد استفاده جشن قرار گرفت. پس از آنکه جشن عروسی به پایان رسید، خداداد و شاهزاده خانم و 9 شاهزادگان و خدمتکاران راهی طولانی بازگشت به سرزمین حران را در پیش گرفتند و آنچه از خوردنی و نوشیدنی باقی مانده بود همراه خود بردند و چندین روز سفر را با آن گذراندند در حدود یک روز راه به سرزمین حران مانده بود که به محل بسیار خوش آب و هوایی رسیدند و چادرها را برپا کردند بعد از کمی استراحت خداداد رو به شاهزادگان کرد و گفت نکتهای را که تا از شماها پنهان کرده ام فاش میسازم من برادر شماها هستم و مادر من بانو پیروز است سلطان سامره مرا پرورش داده و بزرگ کرده است شاهزادهها ظاهراً به او تبریک گفتند و لیاقت و شایستگی او را ستودند اما در نفرت و حسادت آنها نسبت به او دو چندان شد چند. در همان شب که خداداد و همسرش در چادر خود در خواب بودند شاهزاده ها با یکدیگر همدست شدند که هردوی آنها را به دیار نیستی بفرستند زیرا فکر کردند وقتی پدرشان به این راز آگاه شود بیش از پیش او را مورد ستایش و تحسین قرار میدهد و او را جانشین خود می‌سازد زیرا آن چهر و نه شاهزاده مغلوب سیاه‌پوست قولاسا شدند در صورتی که خداداد به تنهایی او را نابود کرد شاهزاده ها با کارت هزاران ضربه به خداداد که در خواب بود وارد ساختند و او را خونالود در آغوش نو عروسش باقی گذاشتند و, و به سفر خود به کشور حران ادامه دادند پادشاه پدر شاستادگان از بازگشت آنها بسیار خورسند گردید و علت دیر بازگشتن آنها را به کشور پرسید پاسخ دادند که در کشورهای همسایه گردش می و هیچ اشاری به گرفتاری خود به دست سیاه خوست قولاسای آدم و سرگذشت خداداد برادر خود نکردند اما برگردیم به وضع خداداد که در خون خود قوتور بود و همسر او هم وضع بهتری از او نداشت. اما وقتی به هوش آمد از وضع دلخراش خداداد که مانند مردی بی حرکت در بستر افتاده بود گریست و صدای شیونهای او در فضا پیچید. او خود را سرزنش میکرد که سبب این بدبختی بزرگ شده و از بخت برای خود شکایت میکرد تا شهزاد دریابار، ما اینگونه سخنان ناراحتیهای های خدا تا حدی تسلیل میداد و تشمان اشکالوت خود را به صورت خونالود خداداد دوخته بود. خداداد صدای شیور و شاه شاهزاده خانم را نمیشنید اما هنوز نفس میکشید. شاهزاده خانم سراسیمب و شتاب زده خود را به شهر رساند و سراغ تزشک رفت و او را همراه خود به خیم آورد. اما برخلاف انتظار خداداد را در آنجا نیفتند و پیش خود به این نتیجه رسیدند که یکی از حیوانات وحشی به خیمه آنها آمده و خداداد را در آن حال روی زمین کشیده و برده است تا او را خود سازد این بار شاهصاده خانون بیش از پیش ناله و فقانش به آسمان بلند شد پزشک بیچاره که دلش میسوخت به شاهزاده در یا پیشنهاد کرد با او به خانه اش برود و شاهزاده هم موافقت کرد پزشک شاهزاده را به خانه برد و از او پذیرایی کرد اما او قرار آرام نداشت و همش گریه و ناله کرد. سرانجان پزشک از شاهزاده خانم کاهش کرد سرگذشتش را برایش تعریف کند و شاهزاده خانم شرح رویدادها از جمله هجوم برادران خدا داد به شاهزاده خانم و خدا داد را به طور کامل بیان کرد. پزشک شاهزاده دریابار را تشویق کرد که به خونخواهی همسر خود، نصر پادشاه هران که به عدالت‌خواهی مشهور است، برود. و حقیقت را بگوید شهستاد خانم این نظر را پسندید پزشک دو رأس شطور خریداری کرد و وسایل سفر را تهیه دید و همراه شاهزاده دریابار به دربار پادشاه هران هر مسافرت خود را آغاز کردند جراح و شاهزاده خانم دریابار به اولین کاروانسرایی که رسیدند از اشتران خود فرود آمدند و در کاروانسرا به استراحت پرداختند و از صاحب آن اطلاعاتی درباره اوضاع کشور حران گرفتند کاروان سرادار گفت پادشاه حران پنجاه پسر از زنهای متعدد دارد یکی از آنها که از همه برادران لایقتر است خداداد نام دارد که در شهر سامره از بانو پیروز همسر شاه به دنیا آمده و در همان سامره پرورش یافته است ولی ناپدید شده و مادرش همه جا به دنبال او جستجو کرده و اثری از او نیافته است شاه هران این فرزند را هنوز ندیده است و برای او بسیار نگران است و مأمورینی برای پیدا کردن او به اطراف فرستاده است پزشک اتدا فکر کرد بهتر از شاهزاده خانم دریابار را نزد بانو پیروز مادر خداداد بفرستد تا با او وارد گفته شود و تدبیری برای پیدا کردن خداداد به برند اما ترسید که برادران خداداد از حضور شاهزاده خانم آگاه شوند و او را از بین ببرند تا راز آنها فاش نگردد. سپس اندیشید که خود شخصا نزد شاه هر ران برود و ماجرا را برای او شهر دهد. بنابراین شاهزاده خانم دریابار را در کاروان سرا گذاشت و خود را سپار قصد سلطان گردید تا در آنجا به بهترین شیوه برای دسترسی به بانو پیروز کدام است؟ پزشک با این فکر به راه افتاد و به شهر رسید و به سوی قصر سلطنتی می رفت که مشاهده کرد بانوی سوار بر می آید و تعدادی قلام سیاه به همراه او می آیند و تعدادی بسیاری هم نگهبانان سلطنتی به همراه او هستند و مردم راه را برای عبور او می گشایند. پیزشک هم مانند سایرین ادای احترام کرد و از درویشی که در کنار او بود پرسید برادر آیا این بانوی اسب سوار از همسران پادشاه است؟ درویش پاسخ داد: آری، او از همسران پادشاه و بسیار هم مورد احترام است. زیرا مادر خداداد باشد که حتما نام او را شنیده ای پزشک با پاسخ درویش دیگر سخنی نگفت و راه افتاد و در گوشه مسجد ایستاد. همه مردم برای شرکت در دعاوغویی برای سلامت و بازیافتن خداداد در مسجد اجتماع کرده بودند. بانو پیروز هم به همه مردم پول میداد که فرزند او را دعا کنند همه مردم از جان دل خدا داد را دعای خیر می کردند پزشک با یکی از قلامان همراه بانو پیروز به گفتگو پرداخت و گفت می خواهد رازی را با او برای بانو پیروز فاش سازد قلام گفت اگر چنین است پس از مراجعت بانوی من از مسجد به دنبال ما بیا وقتی به قصر رسیدیم من برای تو اجازه میگیرم، تا به جایگاه مخصوص بانو پیروز بروی و با او صحبت کنی اما اگر درباره‌ی مطلب دیگر بخواهی سخن میگویی او آمادگی ندارد زیرا همهش در فکر فرزند دلبند خود خدا داده است پزشک با رعایت این مطلب به قصد رفت و غلام بعد از مدتی نزد جراح آمد و گفت همراه من بیا جراح وارد تالاری شد که بانو پیروز در آنجا بود و چندین بانوی درباری هم در حضورش بودند پزشک گفت: درباره خداداد مطالب ای دارم. مادر خداداد همهی حاضرین، به از دو که محرم اسرار بودند، منخص کرد. آنگاه جراح شرح هجوم برادران خداداد و مزرب ساختن او و بعد ناپدید شدن او را به طور کامل برای مادر توضیح داد. مادر بیچاره از شدت اندوه بیهوش شد. اما همین که به هوش آمد گفت: شما نزد شاهزاده دریابار برو و از قول من به او اطمینان بده پادشاه شما را عروس خود میشناسد. هنگامی که پزشک از قصر خارج شد مادر خداداد در اندوه عمیقی فرو رفت و اشک می و خود را سرزنش می چرا از ابتدا به خدا داد اجازه ی رفتن به کشور هر را داده بود درست در همین حال پادشاه وارد اتالا شد و از بانو پیروز پرسید از خداداد چه خبر؟ مادر بیچاره هم سخنان پزشک را عینا برای شاه بازگو کرد. پدر بیچاره هم از خبر مضروب شدن خداداد سخت ناراحت شد و گریه سرداد و عمل ناپسندیده فرزندان خود را محکوم کرد. پادشاه به بانوی فرصت نداد تمام سرگذشت خداداد را به پایان برساند و خروشید گفت: و من باید این فرزندان ناخلف را که سبب اندوه و گریه تو شدهاند، به کیفر رفتار ناپسندشان برسانم پادشاه که در این لحظه صورتش از اندوه و در این حال خشم حالت محسوسی به خود گرفته بود با شتاب بارگاه خود که در باریان بزرگان کشور در آنجا بودند رفت. همه حاضرین از چهره او به میزان رنج و اندوه شاه پی بردند و از خشم او نسبت به خود میترسیدند شاه از تخت شاهی به زیر آمد و به فرمانده نگهبانان خود حسن دستور داد فوراً با یک هزار سپاهی چهل و نه شاهزاده را دستگیر و همه را در برج مخصوص زندانیان به زنجیر درآورد تمام حاضرین از دستور پادشاه برخود لرزیدند حسن بدون که سخنی بگوید دست خود را به نشانی اطاعت فرمان شاه بر روی سر خود گذاشت و از بارگاه بیرون رفت آنگاه پادشاه همه حاضرین را مرخص کرد و به آنها گفت به خاطر درگذشت خداداد تا یک ماه همه کارهای مملکتی ای خواهد بود هنوز شاه در دربار بود که حسن نزد او مراجعه کرد و گفت فرمان شاه اجرا گردید و تمام شاهزادگان را در سیاه چال زندانی کرده ام آنگاه پادشاه به حسن دستور داد که به کاروان سرا برود و شاهزاده خانم بار همسر خداداد را نزد او بیاورد وزیر فوراً به اتفاق امیران و درباریان به کاروان سرا رفت و اسب مخصوص دربار را که با زین و برگ طلا همراه با یاقوت و الماس و روزش زربفت آرایش یافته بود به همراه برد و شاهزاده خانم دریابار را مرا اسب نشانید و به همراه خود و سایر امیران به دربار پادشاه حرکت داد تمام اهالی شهر در مسیر حرکت وزیر و همسر خداداد سر کشیده و خورا کشیدند و نام خداداد را با احترام بر زبان جاری می‌ساختند و برای او آشت می‌نیستند و از ای که بر مرگ نوجوان مردانه او آگاه شدند، سوج‌باری آغاز کردند. شاهزاده خانم در یابار که به قصر رسید، متوجه شد شاه در انتظار او ایستاده است تا به او خوشامد بگوید. وقتی شاهزاده را دید، دست او را گرفت و به تالار مادر خداداد نمایی کرد. و وقتی شاهزاده مادر و پدر از همسرش را دید، بی اختیار به گریه افتاد هیچ کدام از این ستن یارای سخن گفتن نداشتند زیرا گریه به آنها این فرصت را نمیداد تا آنکه سرانجام شاهزاده دریابار هجوم ناجوان مردانه برادران خداداد را به او و خداداد شهر داد و از پادشاه خواست که خون خداداد پایمان نگردد و قاتلین به مجازات برسند پادشاه اطمینان داد که این نابکاران را نابود خواهد کرد اما نخست باید در گذشت خداداد به آگاهی اهالی کشور برسد تا آنکه مردم بدانند برای چه شاهزادگان را به مجازات میرسانم با وجودی که پیکر خداداد را هنوز به دست نیاورده ایم اول باید مراسم و تشریفات سودباری برگزار شود پادشاه این سخنان را گفت و به وزیر دستور داد تا با سنگ مرمر سفید آرامگاه شایستهای در محل مناسبی در وسط شهر حران بنا کند سپس امارت باشکوهی را هم در درون قصد برای شاه ساده دریابار اختصاص داد. تعدادی معمار و کارگر برگزیده شدند و در مدت کوتاهی روز کار کردند و بنای آرامگاه را ساختند. بعد از پایان کار شاه دستور داد روحانیون می‌خوانند دعا و نماز برای خداداد بپردازند و روز به خصوصی را برای تشییع جنازه و مراسم خط تعیین کنند. در آن روز ابتدا پادشاه و نخست وزیر و بلندپایگان کشور و در باریان وارد آرامگاه شدند و تمام اهالی شهر روی علاقه به خدا داد در آنجا جمع شدند. زمین آرامگاه با فرشهای زیبا پوشیده شده بود و ساج های فراوان برای آرایش آرامگاه در همه جا گذاشته بودند و دیوارها را با های سیاه پوشانده بودند. افسران سلطنتی سوار بر اسب گردید آرامگاه ایستاده و سرهایشان بنشانی یک سوزواری به پایین خم بود سکوت محض همه جا را گرفته بود این افسران همه فریاد میکردند، ای شاه ساده خدا داد فرزند پادشاه بزرگوار ای کاش میتوانستیم، تو را که یه دلیری و سلحشوری هستی دوباره به میان خود باز میگردندیم، ولی خداوند دانا و توانا برای ما و شما چنین خواسته بود و ما باید به خواست پروردگار تسلیم باشیم افتران رفتند و بلافاصله یک ستن روحانی باریش های بلند سوار بر قاطرهای سیاه وارد شدند. این گروه مردان تاریک دنیا و بودند که تمام ایام را در حالت انزوا و در درون قارها به عبادت میگذراندند و با دنیا و امور دنیوی کاری ندارند. اینها هرکدام هر کدام کتابی روی سر خود داشتند که با یک دست آن را نگاه می و این گروه با هم میگفتند ای شاهزاده اگر به اراده پروردگار دوباره زنده می شدی، ما خدمت تو بودیم و سر به آستان تو می ساییدیم. لیکم پروردگار بی همتا تو را از ما گرفت. سپس پنجاه تن دوشیزه زیبا در حال که بر از پای سفید کوچک سوار بودند، ظاهر شدند. کدام زنبیلی از طلا در دست داشتند که هر کدام انباشده از سنگهای قیمتی بود. آنها سه دور پیرامون آرامگاه با چهره گشوده گردش کردند. و در دور سوم مقابل در ورودی آرامگاه استادند و آنکه از همه جوان بود چنین گفت ای شاه بسیار خوش سیما اگر می با و افسونهای خود تو را به زندگی برگردانیم به عنوان کنیزانی تو در خدمتت می بودیم ولی تو در حال حاضر زیبایی را حس نمی و توجهی به ما نداری پس از دوشیزگان شاه و درباریانش سه دور گردا گرد آرامگاه گردش کردند و داره سوم شاه چنین گفت پسر عزیزم، نور دیدگانم، من اینک برای همیشه تو را از دست داده ام درباریان را به گریه انداخت هشت روز ازای عمومی برگزار شد و روز نهم نه شاه دفتور داد شهر و نه شاه ساده را گردن بزنند همین که همین چیز آماده شد خبر آوردند که چند تن از شاهان مجاور به زمین حران حمله کرده و با لشگریان فراوان همه جا را به خاک و خون کشیدند و بیخبر همه را غافلگیر گیر کردند پادشاه به سپاهیان دستور مقابله با دشمن را داد و گفت ای کاش خدا داد زنده بود و به این دشمنان دلری خود را نشان میداد. داد لشگریان پادشاه هران هر به مقابله برخاستند و جنگ خونینی درگرفت گرفت و سپاهیان بسیار از دو طرف کشته شد و لشگر پادشاه هرران در حال شکست خوردن بود که در این هنگام دیده شد که سواران تازه نفسی در نهایت دلاوری و دلیری بر لشکر دشمن حمله شدند و از کشته پشت ساختند بین آنها فرماندهی اسب به جناه چپ و راست و قلب لشکر دشمن یورش می‌برد و همه را از, از زیر تیغ میگذراند چنان ترسی در بین سپاه دشمن پدید آورد که رو به فرار گذاشتند سواران جنگجو آنها را دنبال کردند شاه که صحنه نبرد را میدید از شجاعت و جسارت سواران جنگی که ناگهان هجوم آورده بودند، غرق در حیرت بود و آنها را میسدود و خوشحال بود که جنگ به سود او پایان میگیرد. شاه علاقمند بود که فرمانده دلیر و شجای این سواران را بشناسد. شاه جلو رفت و از تعجب دهانش باز ماند، زیرا این فرمانده دلیر خداداد فرزند او بود. کلشگریان بیشمار دشمن را به خاک و خون کشید و شکست داد. شاه از شادی فریاد خوشحالی برآورد و گفت فرزند دلبندم ما تصور کردیم خداوند تو را از ما گرفته است. خداداد گفت نزدیک بود جان خود را از دست بدهم. اما خداوند نخواست چنین شود و من را زنده نگه داشتا در چنین روزی وظیفه خود را به شاه و کشورم ایفا کنم. شاه گفت فرزندم. تمام رویدادها را رو می‌دانم و فهمیدم چگونه آدم کار را کشده ای. من فردا برادران خیانتکار تو را گردن می‌زنم. مادرت در قصر به خاطر تو عشق می‌ریزد. برو و او را ببین. آنگاه خداداد به قصد رفت و مادر و همسر خود، شاهزاده دریابار را در آنجا دید و مادرش را در آغوش کشید و اشک شادی از دیدگانش جاری گردید. سپس همسر خود را در آغوش گرفت. و همگی خدای یگانه را سپاس فراوان گفتند که پایان خوشی را برای آنها پیش آورده بود شاه پیروز مندانی به شهر بازگشت اهالی فریاد زنده باد شاه میزدند و شجاعت خداداد را می و او را دعا میکردند که بر دشمنان مملکت پیروز شده است شاه وارد قصر شد و به خانواده خود پیوست و هر چهار نفر همدیگر را در آغوش گرفتند آنگاه شاه از خداداد پرسید پس از مزروب شدن بر تو چه گذشت؟ خدادا توضیح داد مردی روستایی که مرا غرق در خون دیده بود مرا رو روی قاطر گذاشت و به خانه خود برد و با داروهای گیاهی و مرهمهای محلی از خون ریزی جلوگیری گردید و بعد از چند روز بستری بودن در خانه او بهبودی یافتم تمام جواهراتم را به پاس خدمت او به آن مرد روستایی دادم و وقتی متوجه شدم که دشمن من به سرزمین ما سرزمین آورده من هم خدا به مردم محل معرفی کردم و گفتم کشور در خطر است و از جوانان دلیل محلی سواران جنگ و بری تدارک کردم و به قلب سپاه دشمن زدم و آنها را تارو مار ساختم. شاه خدا را سپاس گفت و از خداداد تشکر کرد و گفت امروز باید سزای خائنان را داد. خداداد گفت ای پدر بزرگوار من از گناه برادرانم چشم میپوشم. به هر حال آنها فرزندان شما و از خون و گوشه شما هستند و در زم برادران من هستند شما هم آنها را ببخشید این بزرگواری مردانگی خداداد سبب شد که پادشاه به گریه افتد و او را تحسیم کند و در همان لحظه او را رسما جانشین سلطنت اعلام کرد آنگاه شاهزادگان را که زنجیر بودند به حضور آوردند و خداداد آنها را از بند رها ساخت و در آغوش گرفت و همه مردم شهر از جوانمردی و گذشت خداداد نسبت به برادرانش حیرت زده شدند و او را بسیار ستودند سپس خداداد پزشک را فراخواند و بعد از سپاس فراوان به نهوه شایسته خدمات او را تلافی نمود و زندگی او را تا آخر عمر تعمین کرد و خودش با شاهزاده دریابار و شاه و مادرش پیروز و سایر شاهزادگان زندگی سعادتمندی را دنبال کرد سرگذشت خفتهای که بیدار شد در زمان خلافت حارون و رشید بازرگان بسیار ثروتمندی در شهر بغداد زندگی می کرد که با همسر بزرگتر از خود ازدواج کرده بود و پسری داشت به نام ابوالحسن. این بازرگان آنقدر خصیص بود که حاضر نشد این پسر تحصیلات کافی کند هنگامی که ابوالحسن به سن سی سالگی می رسد پدر را از دست می دهد و یگانه وارث پدر و صاحب آن همه ثروت می گردد که پدر کوشش وصفی جویی فراهم آورده بود. ابوالحسن سلیقه و عقیده متفاوتی با پدرش داشت، زیرا یک عمر از همه چیزهای خوب زندگی محروم بود. پدر فقط معتقد بود باید به قضیه خاش کرد که انسان زنده بماند و باید از هزینه های بیشتر خودداری داری کرد. ابوالحسن دیده بود که جوانان همسن او از لذت‌های سالهای جوانی بهره‌مند می‌شوند و هیچ نوع محرومیتی از هیچ جهت برای خود قائل نمی‌شوند. اما او که به خاطر پدرش از تفریحات و سرگرمیهای دوران جوانی محروم بود، تصمیم گرفت تا حداکثر بهره را از این دارایی ببرد. ابوالحسن با نیمی از ثروت پدری، چندین دستگاه خانه در شهر و چندین ده در خارج از شهر خریداری کرد و سوگند یاد کرد که به هیچ وجه به این املاک دست نزند. اما نیم دیگر را برای خوشگذرانی در نظر گرفت. او شب‌ها بزم‌های شاهانه ترتیب می‌داد. و گرانترین و بهترین شراب ها را در کنار دوستان جوان خود می نوشید و بهترین رقاسته زن و مرد شهر بغداد را به خانه دعوت می کرد و تا ساعتها بعد از نیمه شب به خوشگذرانی می گزرانید. دوستان هم داروبر او جمع بودند و از خانه بی او بحر مند می شدند. این شیوه زندگی اشرافی و این همه حزینه پذیرایی که هر شب تکرار می شد و آن همه انعام به رقاسته های بغداد سبب شد که بعد از یک سال نیمی از ثروت ابوالحسن یعنی آنچه را نقدینه بود از بین برود. ابوالحسن بسیار ناراحت و افسرده شد و نزد مادر آمد و به گوشه نشست. مادر از چهره اندوخین او پی برد که باید اتفاقی افتاده باشد. در حقیقت ناراحتی ابوالحسن به این خاطر بود که دوستان بزم او دیگر به سوی او آمدند و به بحانه های گوناگون از او دوری می جستند. مادر ابالحسن به او گفت ای فرزند شیوهٔ دنیا چنین است که دوستان فقط برای بهرهگیری و خوشگذرانی دور و بر انسان جمع شوند من از اول میدانستم وقتی پولهای تو به پایان رسد معاشرت دوستانت هم با تو به پایان میرسد اما ناراحت نباش خوشبختانه املاک شهری و خارج شهری تو هنوز موجودند و نباید ناراحت باشی ابالحسن به گریه افتاد و به مادرش گفت من باید دوستان خود را بیازمایم و از آنها بخواهم که هنگام نیازمندی یاری من بیایند. مادرش پاسخ داد قبل از آن که بخواهی آنها را آزمایش کنی من به تو میگویم حتی یک نفر از دوستانت هم حاضر به کمک به تو نخواهند بود. اول حسن گفت مادر من نخواه سراغ دوستانم میروم. اگر آنها به درخواستم پاسخ منفی دادند آن وقت از که خود استفاده خواهم کرد. عبالحسن سراغی دوستانش رفت و از آنها تقاضای همراهی کرد ولی همه آنها بحانه آوردند و تمام دوستان شرابخار و همنشین نشین بزمهای شبانه او پاسخ منفی دادند و او را میوز ساختند عبالحسن فهمید که تا چه اندازه در شنافه دوستان فرصت طلب ناغاخ بوده و در واقع در خواب قفلت به سر می است او که از این تجربه پنگ گرفته بود به خانه برگشت و برنامه ای برای حزینه زندگی خود در نظر گرفت بدین این که صندوقشه اجاره های خود جا گشود و تصمیم گرفت برای حزینه هر روز مقدار مختصری پول از آن بردارد و خرج کند و با خود سوگند یاد کرد که فقط یک مهمان در هر شب به خانه بیاورد و به طور معتدل از او پذیرایی کند و برای این منظور هر روز هنگام غروب روی پل دجل می نشست و مسافرینی را که از کشتی به ساحل می در نظر می گرفت و یکی از آنها را میهمان خود می کرد و به او هم سریحن و معدبانه می گفت شما امشب میهمان هستید و چون سرگرم یاد کرده از شما می خواهم که فردا صبح دنبال برنامه خود بروید عبال حسن این برنامه را دنبال کرد و هر غروب آفتاب از روی پل دجله مسافری را به خانه می آورد. در یکی از این روزها خلیفه هارون و که خود را به صورت یکی از بازرگانان موسل در آورده بود و فقط غلام سیاهی را با خود داشت روی پل دجل نمایان گردید. ابوالحسن هم دنبال او راه افتاد. خلیفه عادت داشت که با لباس مبدل در خیابانهای بغداد و اطراف شهر به گردش می‌پرداخت و از حقایق زندگی مردم و وضع آنها آگاه می‌گردد. ابوالحسن که خلیفه را به توی بازرگانان موصلی گرفته بود، با لبخن به او سلام کرد و گفت: از شما دعوت می کنم امشب را شام در خانه من صرف کنید زیرا من سوگند کنم که هر شب نه حسین مسافر تا وارد را که به ساحل پیاده می شود دعوت به شام کنم خلیفه پاسخ داد فکر می کنم قبول دعوت شما بهتر راه تشکر از محبت شما باشد اول حسن بازرگان مستلی را به خانه برد در اتاق پذیرایی صفله بزرگی گسترده بودند و اتاق پاکیزه و مرتب بود شام آماده بود و مادر ابوالحسن از آشپزخانه سه ظرف را بالا فرستاد در ظرف اول یک عدد خروس اخته و در ظرف دوم چهار جوجه مرغ بریان بود در بشقاب‌های سومی و چهارمی در هر کدام در هر طرف آنها یک قاز کباب شده و چند کبوتر آبپز جای داده بودند که با چاشنی خوشمزه‌ای آمیخته شده بود ابوالحسن مقابل خلیفه نشسته بود و هر بدون آن که سخنی بگویند با اشتهای فراوان از خوردنی های مورد علاقه خود خوردند بعد از غذا قلاب اول حسن آفتابه و لگن برای شستن دست و دهان آورد و سپس هر دو از سر سفره برخواستند و به خوردن دسر پرداختند که عبارت از انگور و سیب و هلو و گلابی بود بعد از آن شمدان های بزرگ برافروختند و شراب و ساقن از دانها آورده شد و مادر ابوالحسن هم از قلام خلیفه پذیرایی شایانی کرد. در این هنگام ابوالحسن جام خود را از شراب لبریز کرد و به سلامتی خلیفه نوشید و به او هم تعارف کرد و گفت: به نظر من کسانی که شراب نمی نوشند مردم عاقلی به شما نمی آیند. باید نوشید و اندوه جهان را به جهان واگذاشت و این جامها به ما خوشی و فراموشی می بخشند. خلیفه جام خود بلند کرد و به ابوالحسن گفت. شما مرد بسیار خوشرو و خوش خلقی هستی و از شما بسیار خوشم آمد جام مرا هم لبریز کن تا به سلامتی یکدیگر بنوشیم خلیفه جام خود را نوشید و در حالی که لبخند میزد گفت شما مرد با هستی و بهترین نوشیدنی را دوست داری ابوالحسن هم شروع که به تعریف کردن از خلیفه و گفت چقدر خوش وقتم که با چنین آدم فهمیده روبرو رو برو شدم. که اجناس مرغوب را میشناسد خلیفه که مایل بود بیشتر از وضع زندگی ابوالحسن آباه شود نوشیدن شراب را با او ادامه داد تا جایی که ابوالحسن کاملا مست شد آنگاه خلیفه نام و کار و خانواده او را پرسید و او هم شرح زندگی خود را از زمانی که پدرش زنده بود و چگونه صرف جوی و خوشبزرانی ها و بعض شبانی خود را با دوستان همسال خود بعد از مرگ پدر و پایان یافتن ثروت و پراکندگی دوستان از دور او به طور کامل بیان کرد و ضمن گفت که نمی از ثروت پدر را صرف خریدن چندین دستگاه خانهای